رستم در جواب گودر چنین میگه این فرمید که تهمتن چنین پاسخ آورد باز که از ز کاووس کی بینیاز مرا تخت زین باشد و تاج ترگ ترگم یعنی کلا خود مغفرم یعنی کلا خود گبرم یعنی کلا خود مرا تخت زین باشد و تاج ترگ قبا جوشن و دل نهاده به مرگ چه کابوس پیشم چه یک مشت خاک چرا دارم از خشم او ترس و باک سرم کرد سیر رو دلم کرد بس جز از پاکی از دان نترسم زکست اینجا رستم راحت میکنه میگه من از کابوس می نیازم و منو ناراحت کرده من دیگه نمیام گودرس بسیار مرد است درست نقطه حساس رستم رو تشخیص میده و انگشت میذاره روی اون نقطه زفت. سخن رو برمیگردونه به صورت دیگری میگه ولی در لشگرگاه صحبتهای دیگری بود سه گفتار چون سرد انجمن چنین چون این گفت گودرز با پیلتن که شهر و دلیران لشگر گمان به دیگر سخونها برندیم زمان میگه اونا ولی حرف دیگه میزنن که از این ترک ترسنده شد سرفراز نمیدونیم که واقعا در لشگرگاه چنین چیزی میگفتن یا نمیگفتند ولی گودرز به نظرش میرسه که اگر بگوید که رستم ترسان شده از این پهلوان و داره میره رستم باز خواهد گشت و همینطورم اتفاق میفته میگه که اونجا گفتن که رستم ترسیده از این ترک که شهر رو دل ایران لشگر گمان به دیگر سخونها برند این زمان که از این ترک ترسنده شد سرفراز همی گوید این گفته هرکس کس به راز آن سان که گجده احمداد هم آگهی همه شهر ایران به واشد توهی چون رستم همیزو بترسد به جنگ تو را نیست جای درنگ از آشفتن شاه و پیگار او ندیدم به درگاه بر میگه من در درگاه شاه چیزی از آزردن شاه و از جنگ او من چیزی نشنیدم همه صحبت این بود که رستم ترسیده گذاشته رفته سه صحراب ترک است یک سرسخون چون پشت بر شاه ایران مکن چون این برشده نامتن در جهان بدین بازگشتن مگردان نهان میگه این نام معروف شده تو رو که در جهان به جوانمردی و پهلوانی شهره شده با این برگشتن پنهان مکن او دیگر مطلب دیگر که تنگنده درآمد سپاه مکن تیره برخیره این تاج و گاه میگه دلشگر روبروی همن تو این تاج و تخت رو تیره مکن برخیره یعنی بیهوده و بیخودی برای اینکه مملکت باید بمانه مملکت میمانه پادشاه میره کاووس میره این مردمان این مملکت و این تاج و تخت ایرانه که باید بمانه و تو باعث از بین رفتن این مشو برستم بر این داستان ها براند از این قبیل سخنان برستان گفت تهمتن آن کار خیره بمان ناراحت شد مبهود شد بدو گفت اگر بیم یا بد دلم نخواهم که باشد دلم بکسلم میگه اگر دل من بیم و ترس درش رخنه بکنه و وارد بشه من اون دل رو نمیخوام اون دل رو پاره میکنم بدون گفت اگر بیم یا دلم نخواهم که باشد دلم بکسلم از آن ننگ برگشت و این دید راه که آید به دیدار کاووس شا ناچار برای اینکه چنین ننگی گریبان گیر اونشه برگشت و این دید راه یعنی صلاح رو در این دید که بیاد به دیدن کاووس. چو از دور شد وقتی رستم از دور آمد شاه بر پای خواست شاه هم پشیمان شد و سخت چشمش که برستم میفته از جاش بلند میشه چون از دور شد شاه برپای خواست وستی پوزش در گذشته بخواست که تندی مرا گوهر است و سرشت چنان رست باید که یزدان بکشت وزین ناسگالیده بدخواه تو وزین ناسگالیده بدخواه نو دلم گشت باریک چون ماه نو بدین چاره جستن تو را خواستم چون دیر آمدی تیزی آراستم میگه من ناراحت شده بودم از این،, از این پهلوان تازه از این بدخواه نو که آمده دلم تنگ شده بود اینه که وقتی دیر آمدی من تندی کردم به دو گفت رستم رستمم از در فروتنی میاد به دو گفت رستم که گیهان تو راست همه بندگانیم و فرمان تو راست کنون آمدم تا چه فرمان دهی روانت ز دانش مبادا توهی باز دعایی که میکنه به کاووس این است که امیدوارم که روانت از خرت و از دانش توهی نباشه دو گفت کاووس کمروز امروز گزینیم و فردا بسازیم رزم بیا راست رامشگهی شاهوار شد ایوان به کردار خورنبهار همین باده خوردن تا نیم شب به رامش همه برگ برگشاد دولب ایوان باز اینجا قصر پادشاه در قصر خودش بزم میگساری ترتیب داد و اون شب میخوردن و اندوه رو از دلشون شستن و دلتنگی ها رو بدرود کردند. دگر روز فرمود تاگی و توس ببستن شبگیر بر پیل کوس ارز کردم که شبگیر صبح زوده یه صبح زود گفت که کوس رو بر پشت پیل ببندن کوس ساز جنگیست تبل بزرگه و صدایی داره که خیلی تا دور دست میره و او رو برای خبر کردن لشکر می نوازند در گنج بگشاد و روزی بداد سپه بر نشاندود برنشستن در فارسی قدیم تا آخر قرن پنجم برنشستن به معنی سوار اسب شدنه. وقتی میگه پادشاه برنشست یعنی سوار اسب شد برنشاندن یعنی سوار اسب کردن متعدیشه میگه که پول داد روزی داد و سپه برنشاند سربازانش رو سوار اسب کرد و بونه برنها سپه برنشاند و بنه برنهاد بنه هم آزوغه و وسایل و سازوبرگ جنگه سپردار و جوشنوران صد هزار شمرده به لشگرگه آمد سوار میگه که صد هزار شمرده سپردار و جوشنور کسانی که سپر داشتن و زره پوشیده بودند صد هزار تن ولی اینجا من یه قاعده ای رو در زبان فارسی به عرضتون برسونم او این است که اعداد بزرگ معمولا به عنوان قید مبالغه و قید کسرت به کار میرن مثلا وقتی بنده بگم که صد دفعه به شما گفتم این کار نکنید این حقیقتا این عدد نیست یعنی صد بار من نگفتم معنیشم این است که بسیار گفتم که این کار بکن. یا مثلا فرض فرمایید که کلمه هزار در هزار پا. هزار پا که هزار پا نداره که است که دارای بسیار پاست بهش گفتن هزار پا عرض کنم که یه ناهیه هست نزدیک تهران در شمال شرق تهران اون کوهستان ها به نام هزار دره هزار دره یعنی دره های بسیار کوهستان هزار مسجد اینا این هزار هزار صد گاهی دیویست و 300 و امثال اینا به صورت قید مبالغه و قید کسرت به کار میره و اینجا فردوسی برای اینکه نشون بده که این قید مبالغه نیست وقتی میگه صد هزار سپاه مقصودش این نیست که بسیار سپاه و بسیار سرباز صد هزار شمرده یعنی 99 هزار به اضافه یک هزار سوار اون روز بسیج کردن صد هزار سپاهی آمدن آماده برای جنگ سپردار و جوشنوران 100 هزار شمرده به لشکرگاه آمد سوار یکی لشکر از پهلو آمد بدشت که از گرد ایشان هوا تیره گشت پهلو همونیست که ازش کلمه پهلوی رو داریم و چنان که میدونید زبان زبان‌های دوران اشکانی در ایران و هم دوران ساسانی معروف است به زبان پهلوی و پهلوی اسم یک زبان نیست اسم یک رشته زبان هاست به همین دلیل چهار جور شما الله میشناسیم یکی پهلوی ساسانیست یکی پهلوی است، یکی پهلوی مانویست و شعبه ها های دیگری هم داره اینا با هم فرق داره ولی همهشون نوع زبان پهلوی است کلمه پهلو که پهلوان هم از همین است در حقیقت اسم قبیله است این قبیله بوده است پرساو پرثو در زبان های باستانی لام وجود نداشته ره هست این در صورت جدیدترش ر تبدیل شده به لام پرساو شده پلهاو و پلهوی بعد پلهوی لامه قلب شده جا شده پهلوی و این همون کلمه است که به صورت دیگری به صورت پارت و پارتها به معنی اشکانیان آمده است پارت و پهلا هر دو یکیه پرثه و صورت اصلی پهلاو خیلی نزدیک به کلمه پارت به هر حال پارت و پهلو اسم قبیله چادرنشینی است در حقیقت که همون عشقانیان که مدت نزدیک به پنج قرن بر ایران حکومت کردند بعد از حجوم اسکندر اما بعدها پهلو به معنی شهر به کار رفته اینجا که فردوسی می‌فرماید که یکی لشکر از پهلو آمد به دشت که از گرد ایشان هواتیره گشت یعنی این لشکر از شهر آمدن به دشت برای جنگ سراپرده و خیمه زد بر دو میل بجوشید گیتی ز نعل و پیل اولا میل دو میل چقدره ظاهرا باید این میل همون مایل باشه که در کشورهای انگلیسی زبان واحد مسافت و معادل 1600 متر یعنی یک کیلومتر و دهم ده در حقیقت هر 5 مایل مطابق 8 کیلومتر بعد میل دریایی هم داریم که من حالا از کم و کیفش خبر ندارم و لزومی هم نداره اینجا در شرح داستان رستم و سهراب راج میل دریایی هم حرف بزنم. ولی این کلمه خیلی خیلی قدیمی است، کلمه میل کلمه قدیمی است، در فارسی هست، در عربی هم هست، در همه اینجا هم فاهد مسافته و مسافتش طبعا تقریبی است، و در فرهنگ های فارسی نوشته است مسافتی که یک چشم سالم درست و حسابی تا اونجا رو میتونه ببینه از دور تا جایی که دیده یک چشم طبیعی میتونه ببینه اون قسمت رو البته در سرزمین صاف و هموار. او رو میگن یک میل و هیچ بایید نیست که این کلمه میل با همون میل به معنی گلدسته و معنی ستون و به معنی میل یکی باشه و این علتش این بوده که در ایران که نواحی کویری بسیار داشتیم و کویر درش راه که نمیتونه وجود داشته باشه برای اینکه ری هست و این ریگ روان گاهی به صورت کوه یه جا پای یه بوته کچولوی خار یه کوه شن توده میشه شما فردا صبح که از خواب بلند میشید میبینید که این کوه وجود نداره اصلا رفته و یه جای دیگری این کوه هست بنابراین هیچ ای در کویر نمیشه نشانهی ثابتی برپا داشت ولی پادشاهان ایران در دوران رفاه و آسایش معمولا این فکر رو کرده بودند و تا اون اندازه ای که چشم میتوانسته ببینه در کبیر میلهایی بنامی کردند. یعنی ستونهای مرتفعی که هیچ وقت این شن تمام او رو نپوشونه یعنی اگرم میخواد ریگروان بیسته تا وسط های این میسته و سر میل دیده میشه و اینا رو طوری نصب کردن که شما وقتی که پای این میل ایستادید اگر چشم سالمی میداشتید میتونستید میل دوم رو ببینید و به اون طرف برید و این برای راهنمایی مسافران بوده به این ترتیب اون میل که در صحران نصد می شده برای راهنمایی کم کم به معنی این مسافت هم به کار رفته و گفتن یک میل و دو میل و سه میل به معنی مسافت این بعد به زبونهای اروپایی هم راه یافته به صورت مایل و اینا که الان هست در ضمن باید عرض بکنم که یک کلمه دیگر هم هست که فرسنگ فرسنگ معمولش در حدود 6 کیلومتر. یعنی نزدیک چهار مایله و هر حال اینا اطلاعات جنبی بود در این مورد سراپرده و خیمه زد بر دو میل دو میل راه این لشکر سراپرده و خیمه زد. به جوشید گیگ نعل و زپیل اینجا باز نعلم باید عرض بکنم که معنی لغوی اصلی نعل کفشه و به همین دلیل یک نوع کفش مخصوص هست که به او میگوین نعلین با اصلا در, در قرآن کریم آمده در مورد حضرت موسا اونجایی که میگه به پیشگاه حق تا حالا باریافت در کوه تور خطاب میرسه از حضرت حق که فخلع نعلیک انک الْبَادِ الْمُقَدْ تبا کفشاتو بکن نعلیک یعنی نعلینک یعنی نعلین خودت رو در بیار و نعل یعنی دو نعل یعنی دو کفش اما اینجا که فردوسی به کار میبره اینجا نعل اسب مراده که در حقیقت اونم برای اسب و برای چارپا نوعی کفش سراپرده و خیمه زد بر دو میل بجوشید گیتی ز نعل و پیل هوا نیلگون شد نیل رنگش روشن آبی است آبی پر رنگ البته زمین آبنوس آب هم چوب سیاه رنگی است. همی کر شد گوش از آبای پوز از صدای پوز گوش کر رفت منزل به منزل جهان شده تیره و روز گشته نهان میگه این سپاه منزل به منزل میرفت منزل عبارت از است که یک روز معمولا سپاه اون مسافت رو طی کنه یا مسافر فرق نمی کنی. همی رفت منزل به منزل جهان شده تیره و روز گشته نهان درخشیدن خشت و ژوپین ز گرد چو آتش پس پرده لاش برد. خشت نوعی نیزه کوتاه بوده که او رو پرتاب می این نیزه کوتاه ست اسم داره اسم بسیار معروفش زوبین و ژوپینه. دو اسم دیگرش یکی خشته و یکی شل و این هر دو به معنی همون نیزه فلزی بوده و اینو در دست میگرفتن و پرتاب می کردن میگوید که چون فلزیه طبعا درخشش هم داشته میگه درخشندگی خشت و ژوپین از زیر گرد مثل آتش بوده که از پشت لاجورد از پشت پرده لاجورد دیده بشه بس گونه گونه سنان و درفش سپرهای زرین و زرین کفش تو گفتی که ابری برنگاب نوس، برآمد به بارید از او سندروست میگه از درخشیدن کفش های زرین و درخشش سنان سر نیزه و درخش ها به نظر میآمد که ابری به رنگ آبنوس چون گفت جهان از گرد سیاه رنگ بود میگه چنین بود که ابری مثل آبنوس به رنگ آبنوس آمد و سندروس بارید سندروس اسم نوعی سمقه که زرد رنگ این سمق و وقت که میگن سندروس مراد, مراد در هر حال رنگ زرده که اینجا درخشش کفش زرین و سر سنان ها و سر علم ها و درفش و این سندروس رو من گهام میکنم دوستان عزیز همه دیدند کسانی که ویولون نوازندگان ویولون و کمانچه یعنی کسانی که سازهای کمانی دارن اینا وقتی که اون کمان خودشون برای نواختن میخوان آماده بکنن یه سمقی پلوی دستشونه که این موی آرشه رو میکشن به اون سمق اون سمق زرد هم هست و او همون سندروس. تو گفتی که ابری برنگ آقنوز برآمد ببارید از اون سنده جهان را شب از روز پیدا نبود تو گفتی سپهر و سریا نبود بدین سانت بشد تا در دز رسید شده خاک و سنگ از زمین ناپدید خروشی بلند آمد از دیدگاه به سهراب بنمود کامد سپاه سپاه ایران آمد نزدیک دز از مرکز ایران لشکر آمد آمد نزدیک دز دژ سپید که اکنون به دست سهراب افتاده بود سپاه آمدن تا دم دست و سهراب دیدبان گماشته بود دیدگاه ساخته بود جایی که یه قرابل اونجا بیسته و نگهبانی بکنه و وقتی که سپاه رو دید اون دیدبان فریاد براورد خروشی بلند آمد از دیدگاه به سهراب بنمود که سپاه فریادی بلند شد از دیدگاه و به سهراب نشان داد بنمود یعنی نشان داد که سپاه رسید چون از دیده سهراب آواشنید از دیده یعنی از همون دیدبان چون از دیده سهراب آواشنید به بارو برامد برج به بارو برامد سپه را بدید به انگشت لشکر به هومان نود سپاهی که آن را کرانه نبود چو هومان ز دوران سپه را بدید دلش گشت پر بیم و دم درکشید سپاه جرار مفصلی است و لشکر سهراب این اندازه نبوده بیش از ده دوازده هزارتن نبوده و چون هومان یک چنین سپاه بزرگی رو دید ترسید دلش گشت پر بیم و دم درکشید یعنی دیگه سخن نگفت ولی سهراب به هومان چون این گفت سهراب گرد که اندیشه از دل بباید سپرد که اندیشه از دل بباید سطرد نبینی از این لشکر بی کران یکی مرد جنگی که گرزی گران میگه نباید به ترسی این لشکری که کرانه نداره و انتها نداره یه دونه مرد جنگی که گرز گران بتونه بکار بره توش نیست نبینی از این دشکر بیکران یکی مرد جنگی و گرز گران که پیش من آید به آوردگاه گریدون که یاری دهد هور ماه. میگه یک نفر نیست که با گرزش بتونه بیاد در مقابل من تاپ بیاره اگر و ماه یاری بده به من سلی هست بسیار و مردم بسی سرفراز و نامی نبینی کسی میگه سلاح بسیاره مردم هم زیاده اما آدم سرافراز و آدم نامی زیاد نیست کنون من به بخت ردفراسی کنم دشت پر خون چو دریای آب میگه من به بخت افراسیاب این دشت رو مثل دریای خون میکنم دریای آب میکنم به تنگی ندادیچ سهراب دل فرود آمد از باره شاداب دل یکی جام میخواست از میگسار سار نکردی چرنجه دل از کار زار سراپرده شهریار کشیدن بردشت پیش حصار زبست خیمه و مرد و پرده سرای ندیدن بردشت و بر کوه جای چنان اینا خیمه زدند و چنان جایگیر شدند که دیگه جایی در اون دشت و کوه باقی نمود البته دیگه اسب بود آمدن و جنگ موکول می به فردا تبور و پیش از جنگ اینجا سهراب متوجه کار اصلی خودشه او این است که ببینه آیا پدرش در این سپاه هست یا نه این اصل مطلبه برای سهراب حکیم می که چو خورشید گشت از جهان ناپدید چبه تیره بردشت لشکر کشید تهمتن بی آمد به نزدیک شاه میان بسته مرجنگ را کین خواه که دستور باشد مرا تاجور کزی در شوم بی کلاه و کمر ببینم که این نوجهاندار کیست بزرگان کدامند و سالار کیست بدو گفت کابوس که این کار توست که بیدار دل بادی و تندرست میگه من قربان اگر اجازه میدید با لباس ناشناس برم و ببینم که این پهلوان تازه که آمده کیست کابوس هم میگه اشکالی نداره و رستم میره همینجاست که مسئله زندرزم یا به تعبیر شاهنامه های, چاپ های قبلی شاهنامه زندرزم کشته میشه تهمتن یکی جامعه ترک بار بپوشید و آمد دوان تا حسار پیاده چون نزدیکی دزرسید خروشیدن نوش ترکان شنید بز داشتن. دز در آمد همتن دلیر بدون هیچ ترسوبی می آمد در قلعه چنانچون به آهو شود نر شیر. مثل شیر نری که به آهو نزدیک میشه یا به آهو حمله میکنه چو سهراب را دید بر تخت بزم نشسته به یک دست بر زند رزم به دیگر چو هومان سوار دلیر دگر بارمان نام بردار شیر تو گفتی همه تخت سهراب به سان یکی سر شاداب بود میگه همه تخت رو اندام اون گرفته بود دو بازو به کردار ران هیون هیون یعنی حیوان بزرگ به خصوص شتر و اسب قوی کل دو بازو به کردار ران هیون برش چون بر پیل و چهره چو خون رنگ رخسارش سرخ بود به همین دلیلم اسم شما درش گذاشته بود سهراب یعنی دارای آب و رنگ سرخ ز ترکان به گردندنش صد دلیر جوان و سرفراز چون نرشیر صد تا از پهلوانان ترک همه او اودن پرستار پنجاه پرستار ظاهرا اینجا مراد خدمتگزار زن باید باشه پرستار پنجاه با دستبند به پیش دلفروز تخت بلند همین یک به یک خاندن دافرین بران برز بالا و تا جنگین بالا خودش معنی قده برزم به معنی قد و بالاست ولی اینجا وقتی میگه بالای برز یعنی بالای بلند و باش بو. همین بود رستم همونجاز دور نشستن همی دید و مردان سور رستم اونجا داشت نگاه میکرد به شایستهکاری کاری برون رفت زند زند رزم آمد بیرون برای کاری گوی دید برسان سروی بلند بدان لشکرندر چونو کس نبود پسودش به تندی و پرسید زود چه مردی به دو گفت با من بگوی سوی روشنی و بنمال رو میگه جند یا زند دید که یه مردی است که به قد و بالای او هیچ کس در این دز نیست و اونجا داره نگاه میکنه اونا آمد او رو گرفت پسود یعنی لمس کرد و به تندی ازش پرسید که تو کی هستی؟ به تندی از اون مرد پرسید که تو کی هستی؟ بیا جلو روشنایی و رخسار خود تو من نشون بده ولی خب رستم که این کار نمیتونست بکنه سردار لشکر ایران ناشناس بیاد اینجا و رو بده برای اینکه بشناسنش کی هست نمی که تهمتن یکی مشت بر گردنش بزد تا برون شد ربان از تنش مشتی میزنه به گردن زندرازم و او می میره بنده قبلا عرض کردم که در نسخه های دیگر شاهنامه در چاپ های متقدم شاهنامه گفته بودن که این سندره است برادر تاهمین است و تاهمین او رو گذاشته بوده برای اینکه پدر سهراب رو به او نشان بده ولی از بخت بعد این مرد هم که قسطشون چون, چون هومان و بارمان که اصلا ماموریتشون این بود که نگذارن که سهراب پدریشو بشناسه از بخت بعد این تنها کسی که کارش این بود به دست رستم کشته میشه از قضاوی باد و اینجا هیچ صحبتی در این چاپ شاهنامه هیچ گفتگویی از اینکه داره بعدی در مورد نامه نوشتن کاووس است پیش رستم و مطلب رو بنده از شاهنامه حکیم توس میخونم میفرماید که بران برنهادند یک سر که گیو به زاول شود پیش سالار نی آنگهی رایزن با دبیر که کاری گزاینده بود ناگذیر یکی نام فرمود پس شهریار نوشتن بر رستم نامدار نام فرمود یعنی دستور داد که بنویسند. نخست آفرین کرد بر پهلوان که بیدار دل باش و روشن روان چون این باد کن در جهان جز تو کس نباشد به هر کار فریاد رست چو برخاندم این نامه گجده هم نشستیم گردان لشکر به هم به نزد تو آورد پرمای گیو چون این رای دیدند گردان نیو چون نامه به خانی به روز و به شب مکن داستان را گشاد دلب میگه وقتی که این نام رو خوندی این داستان رو پنهان نگاه دار و از او حرفی نزد تنها کاری که میکنی این است که فوراً با سوارانت متوجه ایران متوجه پایتخت بشی برای رفتن به جنگ این سالار ترک که آمده است دوباره بیت رو می‌خونم می‌فرمد که چون نامه بخوانی به روز و به شب مکن داستان را گشاده دلب مگر با سواران بسیار هوش ز ول به براری خروش بدینسان که گشده هم یاد کرد جز از تو نباشد برا هم نبرد به گیوان زمان گفت برسان دود انان تکاور به باید بسود نباید چون نزدیک رستم شوی به بمانی و گر بغنوی این اگر باز به معنی یاس یعنی نباید وقتی به زابل رسیدی اونجا بمانی یا اینکه بخوابی فوراً حرکت کنید اگر شب رسی روز را بازگرد بگویش که تنگن در آمد نبرد بعد گیو نام رو میگیره و میره بر طبق دستور از اون نامه بستد به کردار آب برفت و نجستیچ آرام خواب چون نزدیکی زاولستان رسید خبر به فرزند دستان رسید تهمتن, پذیر، پذیر، تهمتن پذیره شدش با سپاه نهادن بر سر بزرگان کلاه از اون نامه بستد به کردار آب برفت و نجستیچ آرام و خواب چون نزدیکی زاولستان رسید خبر زو به فرزنده دستان رسید تهمتن پذیره شدش با سپاه نهادن بر سر بزرگان کلاه پیاده شدش گیو و گردان به هم هران کس که بر زین بود از بیش و کم از اسپندر آمد گوه نامدار از ایران بپرسید و از شهریار اینجا اولا من درست کنم که فرزند دستان رستم دستان چند تا معنی داره یکی جمع دسته که همه میدونن یکی دستان به معنی آهنگ و نوای موسیقی است و به همین دلیل بلبل رو میگن هزار دستان یکی هم دستان به معنی مکر و فریبه و چون زال با عوالم ماورای طبیعی و با سیمرغ ارتباط داشته گروهی از دشمنانش او رو زال جادو میگفتن و لقب دستان بهش داده به هر حال فرزند دستان یعنی رستم میگه رستم گیف رو استقبال کرد و بزرگانی که کلاه بر سر می چون کلاه متعلق به بزرگان بوده همه آمدند و وقتی که به هم رسیدن همه پیاده شدند. میگوید که رستم هم پیاده شد از اسپندر آمد گوه نامدار از ایران به و از شهریار این جزء مراسم بوده است که وقتی کسی می رسیده چند چیز رو همون به محصه رسیدن از اون میپرسیدن یکی این بود که راه بر تو چگونه گذشت و خیلی ناراحت که نبودی از رنج راه و بعد هم خبر میپرسیدن که چه خبر آورده همین کارو کرد رستم از گیب پرسید زره سوی ایوان رستم شدند. ایوان یک معنیش کاخ و قصره و اینجا به همون معنی است. ز سوی ایوان رستم شدند ببودند و یک بار دم برزدند بگفتان چه بشنید و نامه بداد یعنی گیف بگفتان چه بشنید و نامه بداد ز سهراب چندی سخون کرد یاد تهمتن چه بشنید و نامه بخواند بخندید از آن کار و خیره بمان که ماننده سام گرد از میهان سواری پدیده آمدن در جهان تعجب میکنه که کسی مثل سام پیدا شده است از آزادگان این نباشد چگه ز ترکان چنین یاد نتوان گرفت آزادگان لغب ایرانیانه و گاهی در شاهنامه کسی ایرانی وقتی می‌خواست خودشو معرفی بکنه میگفته از ایرانم از شهر آزادگان و اینجا که رستم میگوید که از آزادگان شگفت نیست که سواری مثل سام پهلوانی مثل سام سوار برخیزه ولی میگوید در میان ترکان چنین چیزی اصطلاح مورد انتظار نیست از آزادگان این نباشد چه گفت ز ترکان چون این یاد نتوان گرفت. من از دخت شاه سمنگان یکی پسر دارم و باشد او کودکی هنوز آن گرامی نداند که چنگ توان باز کردن به هنگام جنگ فرستاده هم زر و گوهر بسی سوی مادر او به دست کسی چون این پاسخ آمد که آن ارجمند بسی بر نیاید که گردت بلند میگه بچه من هنوز کوچیکه فعلا اهل جنگ نمیتونه باشه من برای مادرش هدیه فرستادم و مادر پیغام داده است که به زودی او بسی بر نمیاد که بلند میشه یعنی رشد میکنه و بزرگ میشه ولی الان من گمان نمیکنم این کسی که آمده اون فرزند من باشه همین می خورد باز این پیغام تهمینه است به رستم میگوید که دوباره به تو تکرار میکنم چون پاسخ آمد از طرف مادر سهراب چون این پاسخ آمد که آن ارجمند بسی بر نیاید که گردت بلند همین میخورد با لب شیر بوی شود بیگمان زود پرخاشدوی بعد رستم خودش میگه میگه بباشیم یک روز و دم برزنیم یکی بر لب خشک. نم برزنیم. این اصطلاح اولا دعوت میکنه که حالا استراحت بکنن کمی به خلاف فرمانی که کافوس داده و بعد هم این اصطلاح بسیار جالب توجهه که از قدیم کسانی که در هوای می بودن و آرزو و هوس می داشتند می میگفتن که ما تشن یا لبمون خشکه. اینجا هم رستم همین اصطلاح رو در هزار سال پیش فردوسی هزار و چند سال پیش برای در سال 400 شاهنامه تمام شده این اصطلاح اون روز قطعا رایج بوده که فردوسی گفته که لب خشک رو نمی بزنیم یعنی شرابی بخوریم ازان پس گراییم نزدیک شاه به گردان ایران نماییم راه باید میریم پیش شاه مگر بخت رخشنده بیدار نیست وگرنه نه چون این کار دشخار نیست میگه شاید بخت درخشان بیدار نباشه اگر بخت بیدار باشه این کار کار خیلی مشکلی نیست چون دریا به موجند در جای زجای ندارد دم آتش تیز پای خودش رو تشبیه میکنه به دریا میگه یه دریا به موج بیاد آتش تا به مقامت در برابر او رو نداره درفش مرا گر ببیند ز دور دلش ماتم آرد به هنگام سور چون ماننده سام جنگی بود دلیر و حشیبار و سنگی بود بدین تیزی در نیاید به جنگ نباید گرفتن چون این کار تنگ میگوید که اگر اینطوری که میگید او مثل سام است سام دلیر حشیبار هم هست سنگین هم هست سنگی یعنی سنگین سنگ به معنی و این سنگ توی بیابان رو هم که بهش میگن سنگ به دلیل اینه که تنها خاصیت که داره سنگینیه و باز به همین دلیل است که وزنه ترازو رو با اینکه از فلزات مختلف هست و از سنگ نیست میگن سنگ ترازو یعنی وسیده سنجیدن وزن و سنگین هم به معنی کسی که وزنش زیاده هم کسی که وزن معنویش که که هنوزم میگیم پلان آدم سنگین است میگه اگر این جوان مثل سام باشه باید دلیر و هوشیار باشه سنگین هم باشه و به این سرعت و با این عجله اینجا به جنگ نمیاد بدین تیزی ای در ای در یعنی اینجا بدین تیزی ای در نیاوید به جنگ نباید گرفتن چون این کار تنگ میگه این قدم این کار رو سخت نباید گرفت به می دست بردند و مستان شدند زیاد یاد به دستان شدند می و مستان شدن و فکر سپهبد یعنی کاووس از یادشون رفت از یاد سپهبد رفتن سراغ دستان یعنی آهنگ و نغمه در اینجا دگر روز شبگیر شبگیر یعنی صبح تاریک روشن سهرگاهان دگر روز شبگیر هم بر خمار بیامد تهمتن برا کار زمستی همان روز بازی استاد دوم روز رفتن نیامد شیاد میگه روز اول شراب زیاد خورده بودن سهرگاهان روز بعد خمار مستی یعنی اون سردرد ناشی از افرات در خوردن نوشابه غلبه کرده بود آمدم سهرگاه دوباره بزم و آراستن و همون روز باز مست شدند و ایستادند و رستم روز دوم هم یادش نیامد که باید بره روز دیگر هم به همین ترتیب سه دیگر سهرگاه بیاورد می نیامد زمه یاد فرمان که به روز چهارم برا راست گیو حالا گیو هر روز نگران و ناراحته با اون تأکید بسیار زیادی که کاووس کرده به روز چهارم یو چنین گفت با گرد سالار نیو که کابوس تند است و هوشیار نیست هم این داستان بر دلش خار نیست غمی بود از این کار و پرشتاب شده دور از او خرد و آرام و خواب به ظاوالستان گرد درنگ آوریم زمی زمی مخفف زمینه به زاوالستان گرد درنگ آوریم زمی باز پیکار و جنگ آوریم میگه اگر بیشتر از این در زابلستان درنگ بکنیم زمین رو دستخوش پیکار رو جنگ میکنیم بدو گفت رستم که من دیش از این که با ما نشورت کسن در زمین میگه فکرشو نکن کسی تا ما هستیم با ما روی زمین شورش نمیکنه. بفرمون تا رخش زین کنند دم در دم نای رویین کنند سواران زاول شنیدند نای برفتند با ترگ و جوشن. جاج مسلح و مکمل رافتدند گرازان به درگاه شاه آمدند گشاده دل و نیک خواه آمدند چون رفتند و بردند پیشش نماز براشفت و پاسخ ندادیچ باز کاووس خیلی اوقاتش تلخود وقتی که رفتند و ستایش کردند و تعظیم و تکریم کردند جواب نداد یکی بانگ برزد به گیو از نخست اول سر گیو داد زد یکی بانگ بر زد به گیو از نخست پس آنگاه شرم از دو دیده بشست که رستم که باشد که فرمان من کند سست و پیچت ز پیمان من بگیر و ببر زنده بردار کن ازو با من مگردان سخون میگه بگیر برید دارش بزنید زنده خشم بسیار دیده بصیرت کابوس رو تاریک کرده ز گفتار او گیف را دل بخست که بردی به رستم بدانگونه دست میگه دل گیف از گفته کاووس مجروح شد خسته به معنی زخمی و مجروحه میگه دلش زخمی شد از اینکه رستم رو به این ترتیب بهش دست ببره و اصلاً چه کسی میتونسته که با رستم یه چنین رفتاری بکنه و یه چنین حرفی بزنه؟ براشفت با گیو و با پیلتن حضور منده خیره همه انجمن سر و صدا کرد و داد و فریاد بفرمود پس توس را شهریار که رو هر دو را زنده برکن بدار چون گیو هم دستش نمیرفت که بیاد و فرمان شاه رو در برابر رستم اجرا بکنه توس رو صدا کرد و گفت هر دو رو ببر زنده به دار بزن خود از جای برخاست کاووس کی برافروخت برسان آتش زنی مثل نیزاری که آتش گرفته خودشم بلند شد از جاش و مثلا رفت که دیگه کسی شفاعتی چیزی هم نکنه بشد توس و دست تهمتن گرفت اینجا قبل از اینکه من این بیتار رو بخونم باید عرض بکنم که توس با همه تندی و تیزی که داشته و با اینکه خیلی مرد خیراتمندی نبوده ولی اینجا واقعا به فکر بردن و دار زدن رستم نبوده و میخواسته دست رستم بگیره ببره بیرون فعلا تا بعد یه چارهای برای این کار بکنند ولی, ولی رستم هم که بسیار ناراحت بوده وقتی توس میاد دست او رو بگیره او هم خشونت نشون میده حالا بیتاره میخونه. بشد توس و دست تهمتن گرفت به مانده پرخواه شویان شگفت که از پیش کابوس بیرون برد مگر کندران تندی افسون برد ببرش بیرون تا چارهای بکنن تهمتن براشفت با شهریار که چندین مدار تشن در کنار همه کارت از یکدیگر بدتر است تو را شهریاری نه خوره است تو سهراب را زنده بردار کن براشوب و بدخواه را خار کن میگه چرا من دار بزنی؟ سهراب را دار بزن تو که میتونی دار بزنی؟ و بعد هم اشاره میکنه بر اینکه حوادث قبلی رفتن کاووس به مازندران و به و اسیر شدن و گرفتار شدن و رفتن رستم در هفتخان و بیرون آوردن او از چنگ دیوان مازندران اینا همه رو به کلی نادیده گرفته و ناچار رستم هم دیگه حرف آخر رو میگزنه میگه که تو شهریاری در تو نیست و هر کار تو از کار دیگرت بدتره و الانم چرت فکر دار زدن منی برو سهراب رو دار بزنن بزد تند یک دست بر دست توس تو گفتی ز پیل جان یافت کوس توس ز بالا نگ... نگون اندر آمد ز بالا نگون اندر آمد به سر برو کرد رستم به تندی گذر آمد بیرون بدر شد بخاش اندر آمد به رخش منم گفت شیروژن تاج بخش چه خشماورت شاه کابوس کیست چرا دست یازت به من توس کیست زمین بنده و رخش گاه من است گاه به معنی تخته زمین بنده و رخش گاه من است نگین گرز و مقفر کلاه من است میفرم کلاهاخده. شب تیره از تیغ رخشان کنم به آورد گهبر صرفشان کنم. سر نیزه و تیغ یاغ منند، دو بازو دل شهریار منند که آزاد زدم نه من بنده ام. یکی بنده آفریننده ام. به ایرانیان گفت، سهراب گرد بیاید نماند بزرگ و نخورد شما هر کسی چاره جان کنید خرد را به دینکار پیچان کنید به ایران نبیمید از این پس مرا شما را زمین پر کرکس مرا قمی شد دل نامداران همه که رستم شبان بود و ایشان رمید اینجا باید عرض کنم که گاهی رستم به عنوان زابلی، زابلستان رو با اینکه یکی از بخش ایران بوده ولی رستم فرمون روای زابولستان بوده و در اونجا مرکزش بوده گاهی وقتی که میگوید ایرانیان و خودش رو در حساب ایرانیان نمیذاره مثل همینجا که میگه به ایرانیان گفت که شما چاره خودتون رو بکنید اینجا موردی است که در حقیقت نظر داره که مردم زابل غیر از باقی مردم ایران هم. ولی در هر حال همه نامداران ایران نگران شدن از این کار برای اینکه رستم سمت بزرگی و سرپرستی نسبت به اونا داشت و در حقیقت میگه رستم شبان بود و ایشان رمه همه ناراحت شدن رستم رفتی که به گودرز گفتند که این کار توست گودرز اولا از نواده های کاوه آهنگر بوده یعنی خاندان خدمتگذار بسیار محترمی داشته معروف هم بوده به خردمندی و چون سنی هم از او گذشته بوده کسی بوده که رستم از او حرف شنوی داشته کاووس هم از او حرفشنوی داشته به گودرز گفتن که این کار توست شکسته به دست تو گردد درست سپه بد جز از تو سخن نشنود اینجا شاه رو میگه نرستم رو جز از تو سخن نشنود همین بخت ما از این سخن بغنود یعنی بخت ما از این حرف میخواب خواب, خواب میره به نزدیک این شاه دیوانه شو و از این درس سخن یاد کن نو به نو من اینجا این توضیح توضیحو بدم که این کلمه سخن در اصل سخون بوده و در شاهنامه دکتر خالقی هم همه جا اعراب گذاشتن روش که سخون یکی از دلایلش هم این است که گاهی با چیزهایی با کلماتی مثل بون و مثل مکون قافیه میشه در حالی که هیچ وقت نمیبینیم که کلمه سخن با کلماتی مثل تن مثل زن قافیه بشه این نشانه این است که این کلمه در دوره فردوسی به صورت دیگری خونده میشده و اون صورت همون سخونه در بعضی نسخه های خطی قدیمی که هست مخصوصا این حرکت رو روش گذاشتن به هر حال بنده گاهی سخون میخونم گاهیم از زبانم در میره و همونطوری که امروز حرف میزنیم سخن میخونم این رو بربنده میبخشید انشالله به که این شاه دیوانه و وزیندر این در سخون یاد کن نو به نو سخونهای در خور فراز مگر بخت گم بوده باز آوری سپهدار گودرز کشواد، گودرز پسر کشواد رفت به نزدیک خسرو و تفت به کابوس کی گفت رستم چه کرد که از ایران برآوردی امروز گرد؟ میگه تو امروز گرد از مملکت برآوردی یعنی مملکت رو نابود کردی؟ رستم چه کار کرده بود؟ چون او رفت و آمد سپاهی بزرگ ابا پهلوانی به کردار گرگ که داری که با او بروز نبرد شود برفشانت او تیر گرد یلان تو را سر به سر گجده هم شنیده است و دیده است از بی میگه تمام پهلوانای تو رو گجده هم دیده و هم میشناسه تا بطوان هر یکی رو هم میدونه همی گوید آن روز هرگز مباد که با او سواری کند رز میاد میگه امیدوارم روزی پیش نیاد که هیچ کدوم از سواران ایران بخوان با سهراب جنگ بکنه. کسی را که جنگی ترستم رستم بود براند خرد در سرش کم بود ببینید در زمین اینجا ما گروهی کسانی که طبعا مطالعه کافی در شاهنامه ندارن به دلیل اینکه این کتاب اسمش شاهنامه است فکر میکنن خب سراسرش هم داستان شاهانه و لدل به دلیل اینکه بالاخره شاه بزرگتر بود و فرمان روا بوده و فرمانروا بوده نامه شاهانه ابدا اینطور نیست نه تنها رستم چند بار جلو کاووس میاد به تفصیل بلکه سرداری مثل گودرز هم روبروی شاه میگوید که کسی که سرداری مثل رستم داره باید عقلش کم باشه که او رو برانه و کار به اینجاها تمام نمیشه مردم بر شاه بیدادگر شورش میکنن او رو از بین میبرند در موقع جلوس یه شاه تازه ولو اینکه مورد تایید شاه قبلی باشه سرداران و سپهبدان و بزرگان نظر خودشون رو ابراز میکنن و خلاصه اون چه در زندگی واقعی ایرانیان اتفاق می در شاهنام منعکسه منتها خب باید آدم این جزئیاتو مطالعه کرده باشه و اگر مطالعه نکرده باشه خدای نخواسته از اظهار نظر خودداری کنه برای اینکه اظهار نظر بدون مطالعه در باب مطلبی نشانه در حقیقت کمی خرده همین که فردوسی میگوید که اگر کسی رانت خرد در سرش کم بود کسی هم که کتابی رو حالا هر کتابی رو چه برسد به شاهنامه که سند ملیت ایران و معروفترین کتاب شعر و نصر فارسی است یک جا بدون مطالعه کردن نفیش بکنه کسی را که جنگی چورستان بود براند خرد در سرش کم بود عکس العمل شاه هم اینجا قابل ملاحظه است با اینکه قدرت پادشاهی داره و کاووس یکی از شاهان بسیار بسیار مقتدرم هست ولی چو بشنید گفتار گودرز شاه بدانست کو دارد آیین راه وقتی گفتار اورشنید شنید دید حق به جانب اوست پشیمان بشد زان کجا گفته بود به بیهودگی مغز شفته بود به گودرز گفتین سخن در خور است لب پیر با پند نیکوتر است خردمند باید در پادشاه که تیزی و تندی نیارد بها شما را بباید پس او شدن به خوبی بسی داستان ها زدن سرش کردن از تیزی من توهی نمودن به دو روزگار بهی اینجا گودرز هم قبول میکنه و میره برای گفتگوی بارستن چو گودرز برخواست از پیش اوی پس پهلوان تیز بنهاد روی برفتند با او سران سپاه پس رستمندر گرفتند راه چو دیدند گرده گوه پیلتن همه نامداران شدند انجمن ستایش گرفتند بر پهلوان که جاوید باشید و روشن روان ببخشید چه رو درست نخوندم ستایش گرفتند بر پهلوان که جاوید بادی و روشن روان جهان سر به سر زیر پای تو باد همیشه سر تخت جای تو باد تو دانی که کابوس را مغز نیست به تندی سخن گفتنش نغز نیست بجوشد همان گه پشیمان شود به خوبی ز سر باز پیمان شود تهمتن گرازرده باشد زشاه مر ایرانیان را نباشد گناه میگه اگر رستم تهمتن پهلوان از پادشاه رنجیده است ایرانیان که گناهی ندارند که اونها را میخوای به دام بلا بگذری و بری هموز آن سخنها پشیمان شده است ز تندی بخواید همی پشت است پشت دستشو میگزه که چرا این کارو کرده ولی رستم اول قبول نمیکنه و ناچار گودرز از راه دیگری وارد میشه برای قانع کردن رستم رستم در جواب گودرز چنین میگه فردوسی فرمد که تهمتن چنین پاسخ آورد باز که هستم ز کابوس کی بینیاز مرا تخت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 جز از پاکی از دان نترسم که است. اینجا رستم راحت میکنه. میگه من از کابوس بینیازم نیازم و منو ناراحت کرده من دیگه نمیام. گودرز که بسیار مرد خردمندی است درست نقطه حساس رستم رو تشخیص میده و انگشت میذاره روی اون نقطه ضرف سخن رو برمیگردونه به صورت دیگری، میگه ولی در لشگرگاه صحبتهای دیگری بود سه گفتار چون سرد گشتن جمن چون این گفت گودرز با پیلتن که شهر و دلیران لشکر گمان به دیگر سخونها برندیم زمان میگه اونا ولی حرف دیگری میزنن که از این ترک ترسنده شد سرفرا نمیدونیم که واقعا در لشکرگاه چنین چیزی میگفتن یا نمیگفتند، ولی گودرز به نظرش میرسه که اگر بگوید که رستم ترسان شده از این پهلوان و داره میره رستم باز خواهد گشت و همینطورم اتفاق میافته. میگه که اونجا گفتن که رستم ترسیده از این ترک که شهر و دلیران لشگر گمان به دیگر سخونها ها زمان که از این ترک ترسنده شد سرفراز همی گوید این گفته هرکس به راز کزان سان که گجده هم داد همه شهر ایران به واشد توهی چون رستم همی بترسد به جنگ مراه را نیست جای درنگ از آشفتن شاه و پیگار اوی ندیدم به درگاه بر بردگوی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 بدو گفت اگر بیم یا بد دلم نخواهم که باشد دلم بگسلم میگه اگر دل من بیم و ترس درش رخ بکنه و وارد بشه من اون دل رو نمیخوام اون دل رو پاره میکنم بدو گفت اگر بیم یا بد دلم نخواهم که باشد دلم بگسلم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 شاه هم پشیمان شد و سخت چشمش که برستم میفته از جاش بلندش چون از دور شد شاه برپای خواست وسی پوزشان در گذشته بخواست که تندی مرا گوهر است و سرشت چنان رست باید که یزدان بکشت وزین ناسگا ولیده بدخواه تو وزین ناسگالیده بدخواه نو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 که امروز بزم گزینیم و فردا بسازیم رز بیا راست رامشگهی شاهوار شد ایوان به کردار خورنبهار همی باده خوردن تا نیم شب به رامش همه برگشاب دولب ایوان باز اینجا قصر پادشاه در قصر خودش بزم میگوساری ترتیب داد و اون شب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 داره که خیلی تا دور دست میره و او رو برای خبر کردن لشگر مینوازند. در گنج بگشاد و روزی بداد سپه برنشاندو برنشستن در فارسی قدیم تا آخر قرن پنجم برنشستن به معنی سوار اسب شدن وقتی میگه پادشاه برنشست یعنی سوار اسب. شد برنشاندن یعنی سوار اسب کردن متعدیشه میگه که پول داد روزی داد و سپه برنشاند سربازانش سوار اسب کرد و بنه برنهاد سپه برنشاند و بنه برنهاد بنم م و وسایل و ساز جنگه سپردار و جوشنوران ص هزار شمرده به لشکرگه آمد سوار میگه که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 این حقیقتا این عدد نیست یعنی صد بار من نگفتم معنیشم این است که بسیار گفتم که این کار رو یا مثلا فرض برمایید که کلمه هزار در هزار پا. هزار پا که هزار پا نداره که جانوری است که دارای بسیار پاس بهش گفتن هزار پا عرض کنم که یه ناحیه‌ای هست نزدیک تهران در شمال شرق تهران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 یک زبان نیست اسم یک رشته زبان هاست به همین دلیل چهار جور شما لاقل میشناسیم یکی پهلوی ساسانیست یکی پهلوی است، یکی پهلوی است و شعبه ها و رشته های دیگری هم داره اینا با هم فرق داره ولی همهشون نوع زبان پهلوی هست کلمه پهلو که پهلوان هم از همین است در حقیقت اسم قبیله است این قبیله بوده از پرساو پرساو در زبانهای باستانی لام وجود نداشته ره است. این در صورت جدیدترش ره تبدیل شده به لام پرساو شده پلهاو و پلهوی بعد پلهوی لاموه قلب شده جا شده پهلوی و این همون کلمه است که به صورت دیگری به صورت پارت و پارت ها به معنی اشکانیان آماده است. پارت و پهلا هر دو یکی، پرتسه و صورت اصلی پهلو خیلی نزدیک به کلمه پارت. به هر حال، پارتو پهلاو اسم قبیله چادرنشینی است در حقیقت که همون اشگانیانن که مدت نزدیک پنج قرن بر ایران حکومت کردند بعد از هجوم اسکندر اما بعدها پهلو به معنی شهر به کار رفته اینجا که فردوسی میفرماید که یکی لشکر از پهلو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 جایی که دیده یه چشم طبیعی میتونه ببینه اون قسمت رو البته در سرزمین صاف و همبار اون رو میگن یک میل و هیچ بعید نیست که این کلمه ای میل با همون میل به معنی گلدسته و معنی ستون و به معنی میل یکی باشه و این علتش این بوده که در ایران که نواهی کویری بسیار داشتیم و کویر درش راه که نمیتونه وجود داشته باشه برای اینکه ریگ روان هست و این ریگ روان گاهی به صورت کوه یه جا پای یه بوته کشلو خار یه کوه شن توده میشه شما فردا صبح که از خواب بلند میشید میبینید که این کوه وجود نداره اصلا رفته و یه جای دیگری کوه هست بنابراین هیچ نشانه ای در کویر نمیشه نشانهی ثابتی برپا داشت ولی پادشاهان ایران در دوران رفاه و آسایش معمولا این فکر رو کرده بودند و تا اون اندازه‌ای که چشم میتوانسته ببینه در کویر میلهایی بنامی کردند. یعنی ستونهای مرتفعی که هیچ وقت این شن تمام او رو نپوشونه یعنی اگرم میخواد روان بیسته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 در مورد حضرت موسی اون جایی که میگه به پیشگاه حق والا بار یافت در کوه طور خطاب میرسه از حضرت حق که فخلع نعلایک این انک بالباذ المغتس تب کفشاتو بکن نعلیک یعنی نعلاینک یعنی نعلاینه خودت رو در بیار و نعلاین یعنی دو نعله یعنی دو کفش اما اینجا که فردوسی به کار میبره اینجا نعل اسب که در حقیقت اونم برای اسب و برای چارپا نوعی کفش. سراپرده و خیمه زد بر دو به بجوشید گیتی ز نهل و ز پیل هوا نیلگون شد نیل رنگش روشن آبیست آبیه پر رنگ البته زمین آبنوس، آبنوس هم چوب سیاه است. همین کر شد گوش از آبای پوز. از صدای گوش کرشد همی رفت منزل به منزل جهان شده تیره و روز گشت نهان میگه این سپاه منزل به منزل میرفت منزل عبارت از است که یک روز معمولا سپاه اون مسافت رو طی میکنه یا مسافر فرق نمی کنیم همی رفت منزل به منزل جهان شده تیره و روز گشت نهان درخشیدن خشت و ز گرد شو آتش پس پرده ورد خشت نوعی نیزه کوتاه بوده که او رو پرتاب کرده این نیزه کوتاه ست اسم داره اسم بسیار معروفش زوبین و ژوپینه دو اسم دیگرش یکی خشت و یکی شل و این هر دو به معنی همون نیزه است فلزی بوده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 به رنگ آبنوس برآمد به بارید از او سندروس میگه از درخشیدن کفش های زرین و درخشش سنان سر نیزه و درخش ها به نظر میآمد که عبری به رنگ آبنوس چون گفت جهان از گرد سیاه رنگ بود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 این سندروس رو من گهام میکنم دوستان عزیز همه دیدن کسانی که ویولن نوازندگان ویولون و کمانچه یعنی کسانی که سازهای کمانی دارن اینا وقتی که اون کمان خودشونو برای نواختن میخوان آماده بکنن یه سمقی پلوی دستشونه که این موی آرشه رو میکشن به اون سمق اون سمق زرد هم هست و او همون سندروسه تو گفتی که ابری برانگاب نوس برآمد ببارید از او سندروز جهان را شب از روز پیدا نبود تو گفتی سپهر و سریا نبود بهدینسان بشد تا در دز رسید شده خاک و سنگ از زمین ناپدید خروشی بلند آمد از دیدگاه به سهراب بنمود کامد سپاه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 فریاد برآورد خروشی بلند آمد از دیدگاه به سهراب بنمود که سپاه. فریادی بلند شد از دیدگاه و به صهراب نشان داد بنمود یعنی نشان داد که سپاه رسید چون از دیده سهراب آواش نید از دیده یعنی از همون دیدبان چون از دیده سهراب آواش نید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 لشکر سهراب این اندازه نبوده بیش از ده نبوده و چون هومان یک چنین سپاه بزرگی رو دید ترسید دلش گشت پر بیم و دم درکشید. کشید یعنی دیگه سخن نگفت ولی سهراب به هومان چون گفت سهراب گرد که اندیشه از دل بباید سپرد که اندیشه از دل بباید سطرد نبینی از این لشکر بی کران، یکی مرد جنگی که گرزی گران. میگه نود به ترسی این لشکری لشکر که کرانه نداره و انتها نداره، یه دونه مرد جنگی که گرز گران بتونه به بره توش نیست. نبینی از این لشکر بی کران، یکی مرد جنگی و گرز گران که پیش من آید به آوردگاه. گریدون که یاری دهد رو ما. میگه یک نفر نیست که با گرزش بتونه بیاد در مقابل من تاپ بیاره اگر خورشید و ماه یاری بده به من سلیح هست بسیار و مردم بسی سرفراز و نامی نبینی کسی میگه سلاح بسیاره مردم هم زیاده اما آدم سرفراز و آدم نامی زیاد نیست کنون من به بخت ردفراسیاب کنم دشت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 زبست خیمه و مرد و پردهسرای سرای ندیدن بر دشت و برکوه جای چنان اینا خیمه زدند و چنان جاگیر شدند که دیگه جایی در اون دشت و کوه باقی نمود البته دیگه اسب بود آمدن و جنگ محکول می به فردات ها بود. و پیش از جنگ اینجا سهراب متوجه کار اصلی خودشه او این است که ببینه آیا پدرش در این سپاه هست یا نه این اصل مطلب برای سهران حکیم می که چه خورشید گشت از جهان ناپدید چه تیره بردشت لشکر کشید تهمتن بیامد به نزدیک شاه میان بسته مرجنگ را خواه که دستور باشد مرا تاج بر کزیدر شوم بی کلاه و کمر ببینم که این نوع جهاندار کیست بزرگان کدامند و سال کیست،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 تهمتن یکی جامعه ترک بار بپوشید و آمد دوان تا حسار پیاده چون نزدیکی دز رسید خروشیدن نوش ترکان شنید بز می داشتن. بدان دز در آمد تهمتن دلیج بدون هیچ ترسابی می آمد در قلعه چنانچون به آهو شود نر مثل شیر نری که به آهو نزدیک میشه یا به آهو حمله میکنه.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 بالا خودش معنی قد برزم به معنی قد و بالاست ولی اینجا وقتی میگه بالای برز یعنی بالای بلند و باش و همی بود رستم هم زد دور نشستن همی دید و مردان سور رستم اونجا داشت نگاه میکرد به شایستکاری برون رفت زند زند راز آمد بیرون برای کاری گوی دید برسان سر بی بلند بدان لشکراندر چون کس نبود پسودش به تندی و پرسید زود چه مردی به دو گفت با من بگوی سوی روشنی آی و بنمای گوی میگه جندرزم یا زندرزم دید که یه مردی است که به قد و بالای او هیچ کس در این دز نیست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 بیاد اینجا و دستشو بده بارین که بشناسنش کی هست نمیشده که تهمتن یکی مشت بر گردنش بزد تا برون شد روان از تنش مشتی میزنه به گردن زندرز و او میمیره بنده قبلا عرض کردم که در نسخه های دیگر شاهنامه در چاپ های متقدم شاهنامه گفته بودند که این زندرز برادر تهمینه است و او رو گذاشته بوده برای اینکه پدر سهراب رو به او نشان بده ولی از بخت بعد این مرد هم که قصدشون چون همان و بارمان که اصلا معمولیتشون این بود که نگذارن که سهراب پدرش بشناسه از بخت بعد این تنها کسی که کارش این بود به دست رستم کشته میشه از غذای بعد و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 دوباره بیت رو میخونم میفرماید که چون نامه بخوانی به روز و به شب مکن داستان را گشاد دلب مگر با سواران بسیار هوش ز زاول به تازی براری خروش بدینسان که گجده هم از او یاد کرد جز از تو نباشد برا هم نبرد به گیوان زمان گفت برسان دود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 زره سوی ایوان رستم شدند، ببودند و یک بار دم برزدند. زدند. چه بشنید و نامه بداد، یعنی گیف. بگفتند چه بشنید و نامه بداد، ز سهراب چندی سخن کرد یاد. دم چوب چه بشنید و نامه بخواند، بخندید از آن کار و خیره به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 گردت بلند میگه بچه من هنوز کوچیکه فعلا اهل جنگ نمیتونه باشه من برای مادرش حدیه فرستادم و مادر پیغام داده است که به زودی او بسی برنمیاد که بلند میشه یعنی رشد میکنه و بزرگ میشه ولی الان من گمان نمیکنم این کسی که آمده اون فرزند من باشه همین می خورد. باز این پیغام تہمینہ است برستم میگوید که دوباره به تو تکرار میکنم چون این پاسخ آمد از طرف مادر سهراب چون این پاسخ آمد که آن ارجمند بسی بر نیاید که گردت بلند همین می خورد با لب شیر بوی شود بی گمان زود پرهاش جوش بعد رستم خودش میگه میگه بباشیم یک روز و دم برزنیم یکی بر لب خشک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 دشخار نیست میگه شاید بخت درخشان بیدار نباشه اگر بخت بیدار باشه این کار کار خیلی مشکلی نیست شد دریا به موجند در جای زجای ندارد دم آتش تیز پای خودش رو میکنه به دریا میگه یه دریا به موج بیاد آتش تا به مقامت در برابر او رو نداره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 و سنگین هم به معنی کسی که وزنش زیاده هم کسی که وزن معنویش که هنوزم هم میگیم پلانکست آدم سنگین است میگه اگر این جوان مثل سام باشه باید دلیر و باشه سنگین هم باشه و به این سرعت و با این عجله اینجا به جنگ نمیاد بدین تیزی ای در ای در یعنی اینجا بدین تیزی ای در نیا به جنگ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 شبگیر شبگیر یعنی صبح تاریک روشن سهرگاهان دگر روز شبگیر هم بر خمار بیامد تهمتن بر راست کار ز مستی همون روز بازی استاد دوم روز رفتن نیامد شیاد میگه روز اول شراب زیاد خورده بودن سهرگاهان روز بعد خمار مستی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 به روز چهارم برا راست گیف حالا گیف هر روز نگران و ناراحته و اون تأکید بسیار زیادی که کاووس کرده به روز چهارم برا راست گیف چون این گفت با گرد سالار نیو که تند است و خوشیار نیست هم این داستان بر دلش خار نیست قمی بود از این کار و دل پر شتاب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 گرازان به درگاه شاه آمدند گشاد دل و نیک خواه آمدند چون رفتند و بردند پیشش نماز براشفت و پاسخ ندادیچ باز کاووس خیلی اوقاتش تلخور وقتی که رفتند و ستایش کردند و تعظیم و تکریم کردند جواب نداد یکی بانگ برزد به گیو از نخوست اول سر گیو داد زد. یکی بانگ برزد به گیو از نخست پس پسانگاه شرم از دو دیده بشست که رستم که باشد که فرمان من کند سست و ز پیمان من بگیر و ببر زنده بردار کن و با من مگردان سخون میگه بگیر بگی ببرید دارش بزنید زنده خشم بسیار دیده بصیرت کافوس رو تاریک کرد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 حرفی بزن براشفت با گیو و با پیلتن عذو منده خیره همه انجمن سرو صدا کرد و داد و فریاد بفرمود پس توس را شهریار که رو هر دو را زنده برکن به دار چون گیوم دستش نمیرفت که بیاد و فرمان شاه رو در برابر رستم اجرا بکنه توس رو صدا کرد و گفت هر دو رو ببر زنده به دار بزن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 تندی و تیزی که داشته و با اینکه خیلی مرد خردمندی نبوده ولی اینجا واقعا به فکر بردن و دار زدن رستم نبوده و میخواسته دست رستم بگیره ببره بیرون فعلا تا بعد یه چارهای برای این کار بکنن ولی رستم هم که بسیار, هم که بسیار ناراحت بوده وقتی توس میاد دست او رو بگیره او هم خشونت نشون میده حالا پیتار میخون بشد توس و دست تهمتن گرفت به دومانده پرخواه شویان شگفت که از پیش کابوس بیرون برد مگر کندران تندی افسون برد ببرش بیرون تا چارهی بکنن تهمتن براشفت با شهریار که چندین مدارا تشن در کنار همه کارت از یکدیگر بدتر است تو را شهریاری نندر خوره هست. تو سهراب را زنده بر دار کن بر و بدخواه را خار کن میگه چرا من دار بزنی سهراب دار بزن تو که میتونی دار بزنی و بعد هم اشاره میکنه برای اینکه حوادث قبلی رفتن کاووس به مازندران و به هاماوران و اسیر شدن و گرفتار شدن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 زبالا نگون, اندر آمد زبالا نگون اندر آمد به سر و کرد رستم به تندی گذر آمد بیرون. بدر شد به خش اندر آمد به رخش منم گفت شیروژن تاج بخش چه خشماورد شاه کابوس کیست چرا دست یازد به من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 پیچان کنید به ایران نبینید از این پس مرا شما را زمین پر کرکست مرا غمی شد دل نامداران همه که رستم شبان بود و ایشان رمه اینجا باید ارض کنم که گاهی رستم به عنوان زابولی زابولستان رو با اینکه یکی از بخش های ایران بوده ولی رستم فرمون زابلستان زابولستان بوده و در اونجا مرکزش بوده گاهی وقتی که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 حرف شنوی داشته کاووس هم از او حرف شنوی داشته به گودرز گفتند که این کار توست شکسته به دست تو گردد درست سپه جز از تو سخن نشنود اینجا شاهرانگه نرستن رو سپه بد جز از تو سخن نشنود همین بخت ما از این سخن بغنود یعنی بخت ما از این حرف به می خواب, خواب میره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 در حالی که هیچ وقت نمی‌بینیم که کلمه سخن با کلماتی مثل تن مثل زن قافیه بشه این نشانه این است که این کلمه در دوره فردوسی به صورت دیگری خونده می و اون صورت همون سخونه در بعضی نسخه های خطی قدیمی که هست مخصوصا این حرکت رو روش گذاشتن و هر حال بنده گاهی سخون می خونم گاهیم از زبانم در میره و همونطوری که امروز حرف می‌زنیم. سخن میخونم این رو بربنده میبخشید انشالله به نزدیک این شاه دیوان شو و از این در سخون یاد کن نو به نو سخونهای درخور فراز آوری مگر بخت گم بوده باز آوری سپهدار گودرز کشباد گودرز پسر کشوات رفت به نزدیک خسرو قرامی تا.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 یلان تو را سر به سر گجده هم شنیده است و دیده است از بی میگه تمام پهلوانای تو رو گشده هم دیده و هم میشناسه تا به توان هر یکی رو هم میدونه همی گوید آن روز هرگز مباد که با او سواری کند رزم میاد میگه امیدوارم روزی پیش نیاد که هیچ کدوم از سواران ایران بخوان با سهراب جنگ بکنن کسی را که جنگی ترستم بود برانت خرد در سرش کم بود ببینید در ضمن اینجا ما گروهی کسانی که طبعا مطالعه کافی در شاهنامه ندارن به دلیل اینکه این کتاب اسمش شاهنامه است فکر میکنم خب سراسرش هم داستان شاهانه و لد به دلیل اینکه بالاخره شاه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 مطالعه نکرده باشه خدای نخواسته از اظهار نظر خودداری کنه برای اینکه اظهار نظر بدون مطالعه در باب مطلبی نشانه در حقیقت کمی خیرده همین که فردوسی میگوید که اگر کسی راند خرد در سرش کم بود کسی هم که کتابی رو حالا هر کتابی رو چه رسد به شاهنامه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 شاه بدانست کو دارد آین راه وقتی گفتار ارشنید دید حق به جانب اوست پشیمان بشد زان کجا گفته بود به بیهودگی مغز شاه شفته بود به گودرز گفت سخن در خور است لب پیر با پند نیکوتر است خردمند باید در پادشاه که تیزی و تندی نیارد بها شما را بباید پس او شدن به خوبی بسی داستان ها زدن سرش کردن از تیگزی من توهی نمودن به دو روزگار بهی اینجا گودرز هم قبول میکنه و میره برای گفتگوی بارستن چون گودرز برخاست از پیش اوی پس پهلوان تیز بنهاد روی برفتن با او سران سپاه پس رستمندر گرفتند راه چو دیدند گرده گوه پیلتن همه نامداران شدند دنجومن ستایش گرفتند بر پهلوان که جاوید باشی و روشن روان ببخشید شر رو درست نخوندم ستایش گرفتند بر پهلوان که جاوید بادی و روشن روان جهان سر به سر زیر پای تو باد همیشه سر تخت جای تو باد تو دانی که کابوس را مغز نیست به تندی سخن گفتنش نقض نیست بجوشد همان گه پشیمان شود به خوبی ز سر باز پیمان شود تا همتن گرازرده باشد ز شاه مر ایرانیان را نباشد گناه میگه اگر رستم همتن پهلوان از پادشاه رنجیده است ایرانیان که گناهی ندارند که اونها رو میخواد به دام بلا بگذری و بری هموزان سخنها پشیمان شده است ز تندی بخواید همی پشت دست پشت دستشو میگزه که چرا این کارو کرده ولی رستم اول قبول نمیکنه و ناچار گودرز از راه دیگری وارد میشه